چهارم. هنگام مغرب چند تن از آقایان اهل تسنون یادآوری کردند که در این چند روز گذشته در مساجد، ادارات و بازار صحبت از مطالبی است که در این مجلس مطرح می شود. انتشار این گفتگوها در روزنامه ها باعث علاقه بسیاری از مردم به مذاکرات مطرح شده در این محفل شده و فروش روزنامه ها به صورت چشمگیری افزایش یافته است. یکی از آقایان در صحبت کوتاهی با جناب واعظ پس از تمجید فراوان متذکر شد که این مباحث موجب حل بسیاری از شبهات که از کودکی ذهن آنان را اشغال کرده شده است بنابراین، در همین جا رسما از شما بابت تهمتهایی که به شیعیان میزدیم معذرت می سرور من چون موضوع امامت ریشه و اساس بسیاری از مطالب است استد دارم در این جلسه درباره این موضوع بحث کنید. در نگاه شیعه، امامت اختصاص به اطرت پاک رسول الله دارد. ولی از منظر اهل سنت، امامت فقط مربوط به مجتهدهایی هایی است که با استنباط خود، احکام دین را مشخص می کنند. لذا می بینیم که در کتاب های فقهی ایشان اختلافات بسیاری دیده می شود. نکته قابل توجه است که اهل سنت اشتهاد را مختص به چهار نفر میدانند و حالا در میان آنها دانشمندانی که به مراتب از این چهار نفر عالم تر بودند وجود داشته و دارد. به رغم مطالعات و تحقیقات بسیاری که داشتهام، هنوز نتوانستم بفهمم که از روی چه حسابی اهل سنت اشتهاد را به همین چهار نفر محدود کردند. از پیامبر هیچ دستوری برای پیروی از این چهار نفر نرسیده و اینها هم مثل بقیه علما هستند یک سوال اساسی همین که چرا اهل سنت تبعیت از این چهار نفر را واجب میدانند ائمه ما علاوه بر علم و اجتهاد دارای تقوا و ادالت و زهد بودند برای همین پیروی از آنان بر ما واجب است مگر به عقیده شما دیگر علما تقوا و عدالت نداشتند؟ کدام یک از این چهار امام شما رسول خدا را درک کردند؟ یا دستوری از جانب رسول اکرم در پیروی از آنان آمده است؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل مسلمانان را به تقلید کرکوران كور، از این چهار نفر مجبور می به همان دلیل که شما مردم را به پیروبی از امامانتان مجبور می کنید؟ اجبار به پیروی از ائمه اطهار و اهل بیت طبق نظر ما نبوده بلکه طبق دستور سریح نبی مکرم بوده. رئیس شیعه امام علی علیه السلام در دامان رسول خدا پرورش یافت. مکرورن رسول گرامی اسلام به امیر المومنین اطاعت تو اطاعت من است و مخالفت با تو مخالفت با من است. همچنین میفرمود بر قرآن و اطرت من تقدم نجوید و از خدمت آنها سرپیچی نکنید تا هلاک نشوید باز برمیگردیم به گفتهٔ شما که گفتید امامان شما دارای علم تقوا و عدالت هستند اگر چنین است که شما میفرمایید پس چرا بعضی از آنها برخی دیگر را تكفیر میکردند چرا هرچه بر زبانتان میآید میگویید این حرف واقعیت ندارد هر حرفی که پشت سر امامان ما زده شده از سمت شیعیان است. معلوم می شود که جناب علی حتی کتابهای خودتان را هم مطالعه نکرده اید. همه می دانند که شافعی شیعه نیست. با این حال می گوید در اسلام کسی شومتر از ابو هنیفه متولد نشده است. غزالی که از بزرگان شماست می نویسد ابو هنیفه شریعت را واژگون کرد و هر یک از قوانین شرع را با اصلی مقرون کرد که در نتیجه آن شرع ویران شد. کس این عمل را عمدن انجام دهد کافر است و اگر صحبا مرتکب عمل ابو حنیفه شود فاسق است. الله تا کنون این را فهمیده که من بدون مذبک حرف نمیزنم. واقعیت را میگویم. آن است که امامان شما با هم اختلاف دارند ولی امامان ما هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند این نکته دقیق میتواند به خوبی حق را برای افراد زیرک و باهوش آشکار کند این است خلاصهای از عقیده ما در مورد امامت که اصلی از اصول دین است اینکه میگویید امامت از اصول دین است احتمالا اشتباه است چون بزرگان امامت را از فروع دین میدانند من اشتباه نمی کنم، اگر امامت از فروع دین بود، رسول خدا در اهمیت آن نمی فرمود، اگر کسی بمیرد و امام زمان خودش را نشناخته باشد، به مرگ جاهلیت مرده است. از همین حدیث معلوم است که امامت از اصول دین است. این مطلب را بسیاری از علمای خودتان هم قبول دارند و اما از اصل بحث دور نیفتید. امام بایستی دارای تمام اخلاق حسنه باشد و از مردم زمان خودش عالمتر، فاضلتر، شجاعتر و ظاهدتر باشد. چون این امامی باید از طرف خدا و رسول منصوب شود و چون این امامی مقامش بالاترین مقام روحانی و حتی بالاتر از مقام انبیاست جالب است. از یک طرف شما از کسانی که قلوب می بدگویی می و از طرف دیگر امام را از انبیا بالاتر میبرید، این حرف بیاساس را ما نمیپذیریم. هنوز دلیل مرا نشنیده حرف مرا بیاساس میشه مورید. برای شما از قرآن دلیل میآورم در آیه 124 سوره بقره آمده است و از ابتلا ابراهیم ربهو به کلماتن قال انی جائل و کل ناس امامن قال و من ذریتی قوله لو ينول احد این آیه ثابت میکند که امامت بالاتر از نبوت است چون پس از اینکه حضرت ابراهیم از امتحانات الهی سربلند بیرون آمد از طرف پروردگار به مقام امامت ارتقای درجه یافت <تصفيق> پس باید مقام علی از مقام پیامبر اسلام هم بالاتر باشد آیا این قلب نیست می‌دانید بین نبوت خاصه و نبوت آمه تفاوتهای بسیاریست. امامت از لحاظ رتبه پایین تر از نبوت خاصه یعنی مقام نبی مکرم اسلام و بالاتر از مقام نبوت آمه است. زیرا امیرالمومنین واجد مقام نبوت بوده و اتحاد نفسانی با رسول خدا داشته. پس واجد مقام امامت شده و بر انبیاء گذشته فضیلت دارد. شما دائما مطلب را مشکل تر می کنید. هنوز مشکل اول حل نشده، اشکال دیگری مطرح می شود. <تصفيق> چه مشکلی؟ در حرفهای شما مشکلاتی وجود دارد که گمان نمی کنم بتوانید آنها را درست کنید. شما الان فرمودید که علی کرم الله وجهو دارای مقام نبوت بوده و اتحاد نفسانی با رسول الله داشته و از تمام انبیا بالاتر است تمام این مشکلاتی که به نظر شما حل نمی‌شود با یک حدیث جواب داده می‌شود حدیث بسیار معتبر منزلت از قول رسول خدا خطاب به امیرالمومنین صادر شده که اما ترزا ان تکون منی به منزلت خارون من موسا الا انهو لانبی بعدی. یعنی ای علی آیا راضی نیستی که مقام و منزلت تو نسبت به من همچون مقام هارون نسبت به موسا باشد؟ اولا صحت این حدیث نامعلوم است. سانیان اگر هم درست باشد خبر واحد است. لذا خوب است شما هم به آن اعتنای نکنید حیلیوز میخوام مجبورم که بگویم یا شما کم مطالعه هستید یا امدن نمیخواهید زیر بار حرف حساب بروید به چه دلیلی میگویید این حدیث سخت ندارد یا خبر واحد است در حالی که هم بخاری و هم مسلم و هم بسیاری از علمای خودتان این حدیث را در کتب خود آوردند حتی برخی از آنان همین حدیث را از زبان خلیفه دوم نیز نقل کرده اند خواهش میکنم بفرمایید این حدیث از قول خلیفه عمر چگونه نقل شده است از ابن عباس منقول است که عمر گفت این از علی قیبت نکنید زیرا پیامبر سه خصلت را برای او شمرده است که اگر به من یکی از آنها داده میشد آن را از تمام آنچه آفتاب بر آن میتابد بیشتر دوست داشت روزی من و ابو عبیده و ادهی از اصحاب نزد رسول خدا بودیم، پیامبر در حالی که به علی تکیه داده بود، خطاب به علی فرمود، یا علی، تو از حیث ایمان نخستین مؤمن هستی و از حیث اسلام اولین مسلمان. منزلت تو نسبت به من همچون منزلت خارون نسبت به موساست. هر هرکس که ادعای دوستی مرا بکند، ولی تو را دوست نداشته باشد دروغگوست. این قول خلیفه دوم خودتان است. به چه جرأتی حرف او را رد می کنید؟ و اما نکته دیگر، گفتید این حدیث خبر واحد است و معتبر نیست. در صورتی که علمای شما منکر خبر واحد را کافر و فاسق می‌دانند. بسیار عالی است. واقعا لذت میبرم از اینکه میبینم شما به کتاب‌های ما تسلط دارید. من شنیده بودم علمای شیعه کتاب‌های ما را با پارچه و انبر می‌گیرند. تا دستشان به جلد کتاب نخورد، تا چه دستد به اینکه که آن را مطالعه کنند؟ این از کم اطلاعی شماست. خوب است که بیایید و به کتاب ها و مدارس ما سری بزنید تا ببینید که محصلان شیعه قسمت زیادی از علوم صرف و نحو را از کتابهای علمای شما میخواند. خوانند. بفرمایید چگونه از این حدیث میتوان این نتیجه را گرفت که علی کرم الله وجهو واجد مقام نبوت است از این حدیث شریف سه خصلت برای امیرالمومنین علیه السلام ثابت میشود اول معنا و حقیقت نبوت دوم خلافت و وزارت پس از نبی مکرم و سوم افضلیت ایشان بر تمامی صحابه زیرا حضرت هارون واجد این سخسلت بوده و پیامبر اسلام علی را به منزله هارون معرفی فرمودند. پس با این قاعده علی نیز پیامبر و مبعوث برحق بوده؟ نه اینگونه نیست. خودتان میدانید که از بین حدود یک و بیست هزار پیغمبر تنها پنج نفر علالعزم بودند؟ به عبارت دیگر حضرت هارون از جمله پیامبرانی بوده که استقلال در امر نبوت نداشت و تابع شریعت برادرش بود. مقصود رسول خدا این بوده که به همان گونه که هارون واجد مقام نبوت و در این حال تابع پیامبر اولوالعزم مثل حضرت موسی بوده، حضرت علی علیه السلام هم واجد مقام نبوت و تابع رسول الله است. شافعی در این زمینه می نویسد منزلت حارون نسبت به موسی این بوده که وی برادر وزیر خلیفه و شریک در نبوت موسی بود. پس علی نیز تمام این خصوصیات را داشته است. یعنی شما می خواهید بگویید اگر نبی مکرم اسلام خاتم پیامبران نبود و بود پیامبری بعد از ایشان بیاید علی کرم الله وجههو پیامبر میشد بله کاملا این حرف را فقط ما نمیگوییم بلکه بعضی از علمای خودتان نیز به آن اقرار کردند از عنسابن مالک روایت شده که پیامبر فرمود راستی خداوند متعال مرا بر تمام انبیا برگزید و سپس برای من وسیع انتخاب کرد و علی پسر عموی مرا برگزید و بازوی مرا به او محکم فرمود همچنان که بازوی موسی را به برادرش هارون محکم کرد. پس علی خلیفه و وزیر من است و اگر بنا بود بعد از من پیامبری بیاید او علی بود. لیکن بعد از من پیامبری نخواهد آمد. خلاصه ای کلامان که علی امیرالمؤمنین واجد تمامی صفات و خصوصیات پیامبر است. خیلی عجیب است. چرا شما درباره علی کرم الله وجهو قلوب می کنید؟ چرا میگویید علی تمامی خصوصیات رسول الله را دارد اصلاً قلوپ نیست بلکه عین واقعیت است حتی از لحاظ عقلی هم قابل اثبات طبق قاعده عقلی خلیفه پیامبر باید تمامی صفات پیامبر را داشته باشد رسول خدا و امیرالمؤمنین از جهت اصل و نسب نظیر یکدیگرند از جهت طهارت ذاتی مانند هم هستند از جهت ولایت و مقام تبلیغ مثل همند ایشان به دلیل آیه مباهله نفس رسول خداست همونطور که در منزل رسول مکرم به مسجد باز بود در منزل امیرالمؤمنین هم باز گذاشته شد در حالی که در منازل تمامی اصحاب به دستور خداوند بسته شد جناب واعظ علت همهمه و صحبت‌های مردم را از جناب نواب جویا شدند آقای نواب این گونه توضیح داد اتفاقاً در شب جمعه‌ای که گذشت جناب حافظ با ذکر احادیث فتح را از امتیازات ابوبکر شمرد و گفت در خانه تمام صحابه الا در خانه ابوبکر مسدود شد جناب در این مورد از آقای حافظ مطلب را جولیا شد. در کتاب معتبر از طریق ابوهریره حدیثی داریم که رسول اکرم امر فرمود تا تمام درهایی که به مسجد باز میشد را بستند الا در خانه ابوبکر و سپس فرمود ابوبکر از من و من از ابوبکر هستم. این حدیث ساخته و پرداخته اموی هاست که تلاش می‌کردند در برابر هر یک از فضائل مولای مؤمنان فضیلتی را برای دیگران جعل کنند. خواهش می‌کنم باوردن دلیل مطلب را برای ما و تمامی مردم خواهان حقیقت روشن کنید. بسیاری از علمای شما به نقل از بزرگانی چون عبدالله بن عباس جابر ابن عبدالله انساری و عمر ابن خطاب روایت کردند که رسول خدا فرمود تمام درهایی که به مسجد باز میشد را ببندند الا در خانه علی را و مردم را از داخل شدن به مسجد در حالت حیز و جنابت منع فرمود و فقط علی بود که اجازه داشت حتی در حالت جنابت نیز در مسجد بماند. که البته علت آن هم تهارت آن حضرت از هر گونه رجس و پلیدی بود حال برای اینکه بدانید من هیچگاه قلب نمیکنم، حدیثی رو از قول خلیفه دومتان بیاورم. از قول عمر نقل شده، هر آینه به علی سه خسلت داده شده است که اگر یکی از آنها برای من بود، از شطران سرخمو برایم با ارزشتر بود. اول، ازدواج با دختر پیامبر، دوم، بازگذاشتن در خانه او به مسجد و سوم پرچمداری در روز فتح خیبر پس میبینید که علمای خودتان هم اعتراف میکنند که علی در همه صفات با رسول الله شریک بوده با توجه به این خصوصیات ممتاز بود که پیامبر از خداوند متعال درخواست کرد که علی را وزیر و شریک پیامبرش قرار داد آیا در این زمینه حدیثی هم وجود دارد؟ در منابع شما به نقل از ابوذر و اسماء بنت امص آمده که روزی در مسجد بودیم. پس از ادای نماز ظهر به امامت پیامبر خدا فقیری ارزه حاجت کرد. هیچ کدام از حاضران کمکی به او نکرد. علی بن طالب که در حال نماز و در رکوع بود با انگشت به آن فقیر اشارهای کرد و او نیز انگشتر را از انگشت مبارک ایشان بیرون آورد و از مسجد خارج شد رسول اکرم که این جریان را مشاهده فرمود دست به دعا برداشته و به خدا عرضه داشت خدایا همانطور که برای موسی وزیر و شریک قرار دادی برای من هم علی را وزیر و جانشین قرار ده. ابوزر زر به خدا قسم هنوز دعای آن حضرت تمام نشده بود که جبرئیل نازل شد و آگه ی را بحی نمود. تا جایی که ما شنیده ایم حدیث منزلت اختصاص به علی علی الله و ندارد، بلکه در مورد ابوبکر و عمر هم نقل شده است. رسول خدا فرمود، ابوبکر بکش و عمر برای من به منزله هارون برای موسا هستند. رابی این حدیث قضاعت ابن است، اهودیس این شخص از نظر علمای رجالی خودتان مردود و بی‌اعتبار است علامه ذهبی در میزان الاعتدال این حدیث را جعلی دانسته است در این هنگام که شب از نیمه گذشته بود جلسه خاتمی